گفتگوی در باب خداشناسی حدود ساعت یک و سی دقیقی بام داد ربازارتارز من از خواب عمیقی بیدار کرد و با دست اشاره کرد که به پشت میز تحضیر رفته ندادم را بردارم و آماده نوشتن شدم من هندکی مقاومت به خرج دادم ولی که او اعتناعی نکرد و روی لبی تخت نشسته در سکوت به سقف تیره شد. بعد از چند دقیقه سخن آغاز کرد. لالبازارتاورس. از تو میخواهم این سخنان را یادداشت کرده و به مسابقه یک دیسکورس به جهان ارائه دهی. تو به منزله مجرایی برای این پیام عمل خواهی نمود. حاضری؟ آری، اما لطفا آهسته بگویید. لالبازارتاورس. انسان یک وجود مستقل است هر شخصی درون خیش جهانی فلکی است بنابراین می باید خیش را از دو دیدگاه شناسایی کند ارتباطش با جهان بیرونی که عموماً آن را واقعیت می نامند و ارتباط با جهان درون که معمولا به عالم ذهنی یا معقولات مشهور است از آنجا که وجود بشر عمیقاً پیچیده و مرکب بوده و با شدت تمام درگیر مکانیزم‌های فلکی خیش است. نخستین اصل روانشناسی وی را ملزم می‌کند که به عمق طبیعت خود نظر کرده و با مشاهده خیش و استفاده از شیوه‌های معنوی به تجزیه، تحلیل و شناخت آن بپردازد. طاووس شناسان و روانپزشکان راههای بیشماری جهت مشاهده درون و خیش تحلیلی در اختیار ما می‌گذارند. ما می‌توانیم آنها را بیاموزیم و برای تنظیم خیش به کار گیریم. اما به چه منظوری؟ قرار است ما خیش را نسبت به چه چیزی تنظیم کنیم؟ به شیوه‌ای که عقل به ما ارائه می‌کنند که میدانیم طریق منفی است. یا به خدایی که خود را به ما ارزانی می‌دارد. البته پاسخ در این است که ما می باید خود را نسبت به خدا نظام بخشیم ما روح الهی را نام اک نهاده ایم پت این اک است که می باید در مستر کنترل امور زندگی ما باشد ذهن که تحت تأثیر حواس اول می کند، زندگی ما را در راستای نفس پرستی سوق می دهد. اما بشری که با نور روح هدایت می شود سعادتی پر از شعف برای ما بر می آورد این یک حقیقت معنوی است چون روح هدایت خود را از جانب خدا عالم مطلق دریافت می کند تو که در طریق الهی به این قدم رسیده ای از برکت ساعت 11 دهم این آموزش ها برخوردار شده ای تو آن را به عنوان اکنکار دانش باستانی سفر روح میشناسی. استاد حق در غیر حیات پیام رسان خداست. او کسی است که شیوه های مشاهده درون را به تکنیک های ساده ای بدل می کند و قدرت معنوی را در زندگی های ما به انگیزش درآورده ذهن را به سوی روح هدایت می کند. این عمل که انجام شد صافیر روح ما را ترک کرده و پیروی از فرمانهایش را به عهده خودمان واگذار می‌کند. بعد از اینکه تا حد معینی در این طریق پیشرفت کردیم، استاد ما را با خود به سفری در جهانهای معنوی که درون خودمان است برده و در آنجاست که ما راه آشنای قدیم به سوی خانه حقیقی خود را میپیماییم. در اینجا حکمت عظیمی از طریق دانش خیشتن بر ما فاش می شود اما این انتهای جستجوی ما نیست در این مرحله از تعالیم هر جستجوگری که در راه خداست این را خواهد دانست که می باید به فراسوی مکاشفات خودشناسی و حکمت مربوطه قدم بگذارد به منظور صعود به این جنبه‌های خدایی لازم است بیاموزیم چگونه رد قدرت اکرا گرفته و خیش را طوری در مسیر آن نگاه داریم که جریان آن دائما در آگاهیمان حضور داشته باشد. توضیح این عبارت به معنای واقعی ماورای افق کاربرد زبان و گفتار نهفته است. حتی متبلور کردن آن در قالب فکر بسی دشوار است این یکی از ژرفترین اسرار خداشناسی است که فقط هنگامی نصیب می شود که ما مرحله دانش خیش و حکمت را پشت سر گذاشته و فراسوی آن به ایفای نقش در نمایش الهی زندگی پرداخته باشیم این قدم آخر همان هجران روح برای حیات حقیقی عالمگیر و تلاشی است که در نتیجه آن در فکر، عمل و عشق به درجه استادی میرسد. میتوان این رتبه شناخت را حاصل کنترل آگاهانه و بلا انقطاع سرعت و ریتم عبور جریان قدرت خدایی از درون دانست. از دیدگاه بصیرت ذاتی ما میدانیم معنای این وضعیت چیست. ما می طیف معین و مشخصی از ارتعاشات فردی خیش را بیابیم و خود را در معرض آن قرار دهیم و تحت آن شرایط می توانیم بیشترین منافع را از جریان معنوی دریافت کرده و در زندگی روزمره خیش به کار بندیم ما باید خیش درونی خود را با همان ریتم معنوی که منظور نظر استاد است نظام دهیم تا بتوانیم بهترین عمل کرد را در جهان فلکی درون داشته باشیم آموختن این هنر اقدامی است که صد در صد به اختیار شخص وابسته است بنابراین استاد خردمندانه به ما رخصت میدهد خود چگونگی این تنظیم را بیاموزیم و هرگاه که خود ما رزادهیم تسلط بر امور زندگی ما را میپذیرد و آن پس از این است که ما خود را کاملا با جریان عظیم حیات فلکی همساز و همکوک کرده باشیم همه هنگی ارتعاش فردی ما با جریان صوتی حیات باعث می شود هر یک از ما با دیگری تفاوت داشته باشد آوردن قدرت احساس ریتم معنوی درون و همساز شدن با آن مستلزم صرف وقت قابل توجهی است اما وقتی این حس درون ما تقویت شد کلید و راز بقای درون و آرامش ابدی روح را یافته ایم دیگر احساس امنیت برایمان همیشگی می شود و هوشیارانه از اینکه زندگی ما در دست استاد قرار دارد آگاهیم هنگامی که ذهن ما تا به درجه‌ای از تنظیم معنوی رسیده باشد که بتوانیم خود را به استاد تسلیم کنیم پیوند عشقی میان ما و او ایجاد می شود این شبیه به همان پیوند عشقی که بین مادر و فرزندش پدید میآید. این طریقی است که با استفاده از آن میتوانیم به یک مجرای ارتعاشی برای تجلی خدا تبدیل شویم تا عشق الهیش را از مجرای حضور ما به جهان جاری سازد این هم کوکی را می توان مانند این دانست که مترونوم کوچکی درون ما کارگو داشته باشند که در حال ضربان است و تنها هنگامی آزار دهنده و ناهماهنگ میشود می شود که ما ریتم آن را گم کنیم یا نوتی خارج از کوکی آن به به این دلیل است که استاد حق دانش جریان صوتی فلکی را به ما میاموزد ریتم معنوی درون ما به جهان بیرون انعکاس یافته و راه را برای ما هموار میسازد نه تنها فقط راه ما را بلکه همچنین راه دیگران را پس آن ضربان درونی که هر یک از ما باید مستقلن در هماهنگی با آن زندگی کند چیست جواب این سوال را هیچ کس قادر نیست به ما بگوید اما ما این راه را به واسطه آموزش‌های استاد در خصوص جریان صوتی خواهیم شناخت و با ارتعاش فردی روح خود همکوک و هماهنگ خواهیم شد به این ترتیب هرچه چه در مراقبه‌های روزانه خود بر روی جریان صوتی بیشتر پیشرفت رفت می‌کنیم زندگی ما بیشتر تحت هدایت خدا قرار میگیرد. و ما به یک همکار آگاه در امور کیهان بدل میشویم. شویم بیشتر بیاموزیم که با هدایت نور خدا در این جهان پر از پیچیدگی و گونه گونی زندگی کنیم به همان نسبت نیز بیشتر می توانیم منشع الهام برای دیگران و خدمت به تمامی بشریت باشیم